سلام آقا سلام بفرمایید خوش آمدید قیمت آن فرش کوچک چند است؟ کدام؟ آن فرش کوچک قرمز نه این فرش این که مثل یک تابلو نقاشی است بله آن یک تابلو فرش است قیمتش دو میلیون تومان است. دو میلیون تومان؟ بله، آن فرش ابریشم است. هنرمندان تبریزی آن را بافتند. خیلی گران است، اما واقعا زیباست. یک شاهکار است. البته ما فرش‌های ارزان هم داریم. با من بیایید. این فرش ها هم بسیار زیباست. این فرش یک میلیون تومان است. این هم ابریشم است. این هم فرش تبریز است؟ نه. این فرش کاشان است. فرش کاشان مثل فرش تبریز خوب و زیباست. فروشگاه شما مثل موزه نقاشی است. هنرمندان ایرانی فرشهای زیبایی می